ایران رجل. بازنگری در تاریخ قلم رو ایرانی‌ها فقط شامل پارس و پارت و مات نیستن بعد بگن 얘ان بومی بودن کاسیو بوتی و چی و اینا همه فکر می‌کنن حخا ها و همین منظورون هخامنشیان بله هخامنشیان فقط پارس نبودن هخامنشیان از آمیختن همه جمعیت ایرانی به ویژه حخاها پارس‌ها ماتها و ها به وجود اومدن هخاها خودشون یه جمعیت جداگانه ایرانیان بسیار جمعیت بزرگی در قسمت‌های شمالی‌تر زندگی می‌کردن نسبت به پرشی‌ها و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 که هیچ اشاری تو این تاریخ‌های موجود اصلا نمیدونن دانو چی هست ما سه حالت بازه زمانی تعریف کردن یک کرونولوژی یا گاه نگاری کوتاه هست یکی میانه است یکی بلنده اون چیزی که من نوشته بودم بر گاه نگاری میانه است این نرامسی 2254 تا 299 در هر صورت میلاد بله در هر صورت این دوتا چیز با هم تطبیق دارم اجازه بدید من قبل از اینی که بگم اون متن سارگون اکدیام بگم چون اینا متنشون میگه که در بند 57م کتیبهش میگه کارزینه که در بالای فلان سرزمین جای دارد کسانی که سبک موهایشان با یک تیغ انتخاب می شوند مثل که سرشون تیغ می‌زنه آنها بلعیده شو میشوند با آتش کسانی که خاک سپاری رو نمیشناسند. کاملا یک سنت قدیمی اندورپایی توصیف میکنه با یک شهری که اسم هندورپایی داره به نام ایزد توانا با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان گرامی همراهان صدای امید از سامانه اینترنتی www.sidaiaomid.com صدای ما رو میشنوید از رادیو اینترنتی صدای امید شنوندگان گرامی قسمت 11 برنامه ایران ویج بازخانی و بازشناسی تاریخ قلم رو میانی رو در خدمت شما هستیم همچنان منتظر نظرات، پیشنهادات، انتقادات و نکات تکمیلی همه شما شنوندگان هستیم. شماره پیامک برنامه 3068 است هست که از طریق این شماره پیامک آماده دریافت نظرات شما و سوالات شما هستیم. ما در ده قسمت گذشته تقریبا مقدمات بحث هایی که قرارش انجام بدیم تو برنامه های آینده تمام کردیم. و به نقد تاریخی که در 150 سال اخیر در ایران تدوین شده و به عنوان تاریخ رسمی از طرف حکومت ها و همچنین از طرف محافل دانشگاهی خصوص محافل دانشگاهی قرب تا حدودی به ما ایرانی ها تحمیل شده مورد نقد قرار گرفته مبانی اون مورد بررسی قرار گرفته و همچنین اون فرضیهی که تحتمان و فرضیه مهاجرت آریایی ها از شمال به جنوب و به سمت فلات ایران مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان برنامه مسائل رو از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار دادند. در قسمت 11 هم ما قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم میخوایم یه سری نکات دوستان از برنامه های گذشته یا از مباحث گذشته دارند و جا اون نکات رو بفرمایند بعد وارد بحث اصلی بشیم تا اینکه هیچ نکته ای رو ما خالی نگذاشته باشیم. در این قسمت خوشبختانه هر چهار تا کارشناس برنامه در خدمتشون هستیم. خانم دکتر احسانی، جناب آقای ایران مهر، آقای فیروزی و آقای کریمی عزیز. برنامه رو با آقای ایران مهر گرامی شروع می‌کنیم. جناب آقای ایران مهر، اگه ای نکته‌ای کلامی از مقدمات باقی مونده در خدمت شما هست. خواهش میکنم درود بر شنوندگان عزیزی که همراه هستن. بله، مقدمات به پایان رسید. به پایان که نرسید دیگه. ما قول و قراری گذاشته بودیم برم. که تا حدی اینو تا جایی که امکان داره بگیم تقریبا داریم وارد بحث اصلیمون میشیم من یک دو تا مقدمه خیلی کوتاه امروز میخوام بگم بله برای اینکه این پرسش پیش میاد که آقا چرا این چیزای بی رپ تو داره میگه من توضیح بدم که اینا اتفاقا بی رپ نیستن ما وقت میذاریم صدای امید یک زمانی رو باز کرده برای ما که چی بیایم اینجا مثلا بگیم حسن اومد حسین رفت کیومرث اومد تاهور رفت خب بعدش نتیجه این میخوایم بگیریم یا نه. این بحثی که تاریخ به چه درد ما میخوره برای ما خیلی مهمه. دکتر حسابی خدا بیا آممرزشون میگفتن این ویلکن و انگلیسی ها به ما یاد دادن. اما خودشون یک مسئله دارن میگن تا جایی که چشم در افق میبینه دنبال کن. داری داری. به ما گفتن ویلین ما با این جمله بدبخ شدیم اونا با اون جمله آقا شدن. من نمیم چرا هر وقت ما بحث از تاریخ می کنیم اینکه آقا، ویل کن گذشترو رو به آینده دنیا رو نگاه کن موشک هوا کردن ما هنوز دنبالیم که نمیدنم کی کجا رفت من متوجه نمیشم چرا یک کله سزار که یه جایی زیر خاک ایتالیا پیدا میشه تمام رسانه های جهان تا یک ماه تحت تاثیرشن که این کله سزار زیر زمین نمیدنم روش این ور بوده اون ور بوده کجا بوده یا یک اسکندر که میگی گل از گل همشون میشکوفه. اما ما به م که حرف میزنیم دیگه اولین انگی که میخوریم باستان و گذشته و چیو خب ما میخوایم بگیم که من توی یکی دوبارم گفتم گفتم ما تمام بحسامون اینه که بلکه مردم ما خودشونو بشناسن دیگه حالا اونو سنشون بالای هیچ دستیک که این جوو ها شاید یک مقدار غرور ملی نزد اینا احیا بشه که راه پیشرفت همینه ما کارمون یعنی هدفمون زنده کردن غرور ملی برای جوانای کشورمونه خودشونو بشناسن جمعه ساده تر نمیشه گفت که آقا گذشته چراغ راه آینده است. آینده است ما نمیخوایم تو گذشته گیر کنیم نه گذشته گراییم ما دنبال این جمله اییم گذشته چراغ راه آینده است یعنی با خودمون رو بشناسیم و من بگم ما از اون ملت هستیم که جز به اون دست ملتهایی هستیم که کمترین شناخته رو نسبت به خودمون داریم جالبه اگه تایلندی ها شناخته خاصی نسبت به خودشون نداشته باشن خیلی ایرات ندااشت و حال خیلی تعاللق هم نداشتن یا مثلا دانمارکی ها اما زمانی که کوهندترین و بزرگترین فرهنگ و تمدون جهان داری و نمیشناسی دیگه خیلی بده من این مقدمه رو گفتم تا ببینی که این حرف همون داره من میخواستم تو این نشست چون زیاد نگذشته یاد 175 شهید قواص رو بله. گرامی بدارم به همراه اون 95 شهید گمنامی که اون روز اینقدر با شکوه اینا گرامی داشته شدن مراسم خاک سپاریشون انجام شد من یک پارچه نوشتهی دیدم روش نوشته بود که چه به موقع آمدید داشتیم قرق می شدیم من خیلی فکر کردم درباره این جمله هم به اون قواس ها رب داشت هم به امروز ما رب داشت اونا با دست بسته سرشون رو جلوی دشمن خم نکردن اما اینجور که بات میاد و شاخه می جنبه ظاهرن ما امروز با دست باز یه جورایی داریم آماده میشیم که سرمون رو جلوی دشمن خم کنیم امیدوارم که من اشتباه کرده باشم. اون بزرگوارا کسایی بودن که سبز اومدن و سرخ رفتن تا ایران ایران بمونه. این وظیفه ما رو سنگین میکنه. ما زمانی که تاریخ رو بدونیم خیلی جاها دیگه گول نمیخوریم من یک بار اون مثال 1890 ناصرالدین شاه رو زدم. اینی که بعضی جوونا فکر میکنن ما امروز عقب مونده ایم چی مینا، چون تاریخو نمیدونن ما رو 50 سال از ساخت راه عقب نگه داشتن حالا اینی که یه عده بی پذیرفتند و ما امروز عقبیم خب یه عده امروز بی عرضه هم امروز نپذیرن تا های 50 سال دیگه هم باز عقب مونده باشن اون یه بس توی مجموعه نامه که البته مستند بود من خیلی هم رو نگاه کردم جملاتش از روی کتابای تاریخی برداشته شده بود اون جای آخری که مختار ثقفی میخواد بره به رزم آخرش یاراش آماده تسلیم به مصعب بن زبیرن این آخرین حرفی که بهشون میزنه میگه که تصویر اول یه چهره خوبی به شما نشون میده تا اراده رو بشکنه اما مطمئن باشین که بعدن گردنتون رو خواهد شکست و کشته میشه و پیشبینیش درست در میاد 7000 تا رو میذارن و گردن میزنن همون کسایی که تسلیم شده بودن ما باید از تاریخ درس بگیریم و این کارا رو نکنین شما برنامه‌ای به نام آب بله در صدای امید خیلی برنامه جالبیه ما پیگیری میکنیم این کشور داره رو به خوشتالی میره حالا یا عمدی یا صحفی داره میره ما از این نباد بیشتر در قضیه آب به صحبت بیفتیم کسی از اردن انتظار نداره که برای مسئله آب تو آسیه غربی کاری بکنه چرچیلی گفت من توی بعد با مداد و یه خطکش اردن رو درست کردم بلا دقیقا اصلا اون صحرای علمواری که بین اراغ و اردانسان مشخص اصلا, اصلاً مرداش سر... نگاه کنین اصلاً... با خطیش کشی برای همین که بتونن راه داشته بشه مثل برد. برند هندوستان اما ما اینطوری نیستیم از ما انتظار میده که مشکل آب تو آسیه غربی رو حل کنیم ما دست کم میدونیم فقط با احیای ما به این برنامه ما زمانی که از نظر تاریخی های میانی ایرانو بس کنیم ایران به بس میذاریم ما با احیای یکی از دره های آب میانیمون میتونیم ایرانو نجات بدیم ایران نیازی نداره جنگلی بشه چی بشه اینا چون ما هیچ وقت اینطوری نبودیم اون آب هم باید از آب دریا آزاد گرفته بشه آب شیرین کن میخواد آب شیرین کن هسته‌ای هم فقط بخواد قنای اورانیومشام با 46 درصد بشه بله اگه میخواین آینده این کشور بسیار بزرگی می‌خواد یعنی مردمای مثلا... این کشور با کشورای همسایه و خودشون سر یک لیوان آب همدیگه رو بکشن الان کوتاهی کنین اگرم نه می‌خوین ما سر پامون واسه من مطمئنم آبشینکنا رو آمریکا و اسرائیل عربستان بمباران خواهن کرد اما ما بس پدافند می‌ذاریم نگاشون می‌داریم اما به شرطی که لوازمشو داشته باشیم بحث ما این چیزا نیست توی این برنامه اما گفتم ما باید از تاریخ درس بگیریم آینده امروز میشه تاریخ آینده ده. کاری نکنیم که از ما بد بگن خدمتتون بگم من خواستم بگم که این حرفها ها ها دقت کنم ما همه حرف میزنیم برای زنده شدن این قرور ملی تو جوانام. از همون ب... نشت... چون این ما مقدمات رو حالا بریم سر اون بس. این مقدمات رو آقای دکتر ما چون چیز کردیم یه مقدار خب تو یک زمان بندی گفتیم من احساس کردم وقتی که برنامه نشست پیش تموم شد من تو بحث دانوها بودم بله هی حواسم به ساعت بود و 45 دقیقه تمام شد و اینا بعد احساس کردم خودم هم نفهمیدم چی گفتم بله گفتم اگه اجازه بدیم من یک چند یک در یکی دو دقیقه این دانه ها رو دو سه یه بار دیگه بگم داستانشون چیه بعدن کسی گوش میکنن نگران خودشم نفهمید چی گفت نه خیلی نه توضیحاتون کامل هم بود اتفاقا حالا اگه احساس میکنین که انتجارو من جوید گفتم اگه اجازه بدید من اینا ما گفتیم دانه ها من گفتیم گروه های جمعیت های زیاد ایرانی هستن یکشون رو ها نام بردیم اینا در عوست ها مستندن یه موضوع که هست که من حالا بعد به تاریخ دورش برسیم بحث می‌کنیم. یکی جالبه در رابطه با همین دانو ها بحث زرتشتی بودن هخامنشیانه حالا اتفاقا بحثایی هایی هستش آره... که اساساً اصلا کوروش زرد نبوده نبه احتمالا دارییوش زرداشتی آره بوده حالا من نمی میدونم داریریوش یادش رفته مثلا با. بگه تو بیستتون یک ضرد توشتم یه گوشی ای بنویسن بگه مثلا آقا زرتوش دسته درد نکنه مم. یا ما پیروتی می مثلا نمیتونست بنویسه اگه زرد بوده حالا ای همه نوشه او را مضا ه2 بار یک بارم بالاخره زردرتشت رو می نوشتگه و سازایی بهروز میگن من نمیدونم این یونیا ها همشون به هند رفتن اما چطور یک دو نام بودا توی یک کدوم از کتابشون نیست من فقط حالا بعد میگم حتما بحث میکنیم کوروش بردیا رو به ایک نامی خودش مینامیده پسرش رو با نام تاناو و خسرس پسر محبوب خودش بله یعنی شاه دانو این لقب پسرش بوده که خودش اونو مینامیده تانا و خسرس شاه دانو در صورتی که دانوها در اوستا برای شکستشون نیایش برگزار میشه در عوستا دانوها دشمن پردناشته میشن و برای, شکست و برای شکست شکستشون نیایش میشه اما کورش به سرسلسله هخامنشی سردودمان هخامنشی به پسرش لغبش رو لغبش و داده بوده تانا و خسرست شاه دانو این تناقض و اینایی که اینو میگن یه مدار باید حالا بعدم توضیح بدم بعد کامل واردش میشیم اینجا من فقط چون داریم بحث دانو رو میکنیم یادم آمد که بگم حالا درباره دانوها چیزایی ها چیزهایی که ما اون نشست گفتیم ببینید دانوها ها احساس میشه که چون تو سندهای نه نامشون اومده در مصر متعلق به صده 15 باشه در صورتی که بررسی بیشتری بشه اینطور نیست یعنی اینها خیلی زودتر دستکم نیم هزاره زودتر به اونجا آمده بودن چطور اینطوری که در سندهای هیروگلیف مصری از جنگ شاه دانوها که اینا از شمال فلسطین و سوریه وارد شده بودن با سسوستریس دوم یکی از شاهان دودمان دوازدهم سسوستریس یا سنوسرت یکم در دودمان دوازدهم از پادشاهی میانه مصر جنگیدن یعنی گزارش جنگ تاناوس شاه دانوها با سسوستریس موجود لزوم این جنگ همزمانی دو تا شاهدگی با هم باشن این زمان مربوط به آغاز هزاره دومه و پایان هزاره سوم. یعنی نیم هزاره زودتر. زودتر, زودتر از او که سنت های از اینا نام ببرن اینا در اونجا حضور داشتن بعد اون دانو ها در این جنگ شکست میخورن از راه مصر به آرگوس میرن که ما گفتیم در دوره خودش اینو در توارنامه آخایوس بررسی خواهیم که. آجیب تووس از نیاکان داناوس محصوب میشه در اونجا حالا اگه فرصت شد یک سندی از خشایش رو میخونیم که اونجا به قوم میکنه بله میگه. یا مسینی اونجا یه از یه پدر ساب... مادر مشترک هستی آره بر اونا رو دانو مینامه و میگه دانائه مادر, مادر پرسوس ما که پرس ما از نیاکان ما محصوب ما میشه یعنی به تبار مشترکشون اشاره میگونم بله ما حالا میخوایم وارد بحث اون رسم نووار تاریخی و بحث اصلیمون بشیم. بله. مقدمات رو ما خیلی حالا ما انتظار نداریم برنامه مثلا دو سال طول بکشه. ما قرار شده حدوداً نزدیک به یه سالی برنامه رو پایان برسونیم. اما تا جایی که میشه ما مقدمات رو خیلی هولولاکی گفتیم چون قرار هم گذاشته بودیم اینطوری باشه. ما اگه می‌خواستیم درباره تاریخ سنگاپور یا آمریکا صحبت کنیم کفایت می‌کرد. اما چون داریم درباره تاریخ قلمروی میانی درباره تاریخ ایران بحث کنیم آغاز تمدن و فرهنگ جهان خب این اینا دیگه دوستان بدونن که خیلی فشردست ما داریم اینا رو میگیم من یه چیز رو تأکید میکنم خیلی هم تأکید میکنم این نشست و این نشست ها نخستین رو نخستین تأکید میکنم بله. نخستین نشسته بررسی تطبیق تاریخی در قلم روی میانیه با محوریت ایران دارید. تا حالا هیچ کس، هیچ جا همچین نوع نگاه که ما در این برنامه خواهیم داشت رو نداشت. حالا توضیح میدم که حدود یک دقیقه دیگه شما بعد دور بعدی بات بعد کام، کاملی رو بازش میکنم. نخواستیم باره که این کار انجام میشه، بنابراین پیشینه پژوهش نداره. اه. یعنی ما خودمون رفتیم ایم سندارو نگاه کردیم که تابعی فلان رو نگاه نکردیم. اسناد رو بررسی کردیم و اینجا داریم ارائه میدیم. ما داریم تاریخ روایی رو با تاریخ مستند نه لزومن تاریخ موجود با تاریخ مستندی که سنت های امروز نشون میدن و با تاریخ روایی داریم تطبیق میدیم چون تاریخ موجود که بیشتر به درد تنز میخوره به کار ما نمیاد تاریخ رواییمون استور هست بایدن باشه ما لازمه که این تاریخ استورهی رو با دانش های نوین بسنجیم دیگه من بزنیم مثلا ببینیم اگه کی روی کاری کرده ببینیم تنها داستان بوده. یعنی دانش نوین هم سرنت برای این ارائه میده. ما تو این نشست بررسی بررسیم حالا من رو در اختیار دوستانی قرار میدم. بعد توضیح میدم که چه نگاه هایی به این هست که ما تأکید بکنیم که نگاه ما نو و نخستی باید. سپاسد. حیل مستن از شما. خانم دکتر ما حدود چندین جلسه در خدمت شما نبودیم ولی سه جلسه ای که در خدمتون بودیم خیلی استفاده کردیم از صحابتاتون و از دانشتون قبل از ورود به بحث اصلی شما چه مباحثی رو در واقع جا انداختین و فکر میکنید که تو برنامه جا افتاده و برای تکمیل مقدمات میتونیم ازش استفاده بکنیم. بله درود به شنوندگان برنامه من تا اونجایی که خاطرم هست اگر اشتباه نکنم بحث رو از اونجا آغاز کردم که ببینیم، یعنی بیایید ببینیم که چرا باید تاریخی که در دوران استعمار برای ما نوشته شده رو بهش شک کرد و درش بازنگری کرد که خب برای این یه چند تا سند و دلیل و اینا آوردیم یه چند تا کتاب معرفی شد که دیگه دوستان باید اگر علاقه مند باشن کتاب ها رو مطالعه بکنن و ببینن که چرا واقعا باید در تاریخی که برای ما نوشته شده است شک کنیم و چرا باید بازنگریش بکنیم مقدماتی که من گفتم تا اونجایی که یادم میاد این چیزها بود و رسیدیم به اونجا که از ریگویدا یک شاهد مثال آوردیم برای اینکه این قضیه کوچه آریاییان بر اساس متون خود ما خیلی سندیت نخواهد داشت من حالا امروز میخواستم اگر بشه فرصت بشه وارد متون ایرانی هم بشیم چون میدونم بله. توی جلسات که من نبودم دوستان وارد متون میان رودانی و فکر میکنم به هر حال قرب ایران و اینها شده بودن خب من در آغاز یک پرسش خیلی اساسی که در آغاز کار برای ما پیش میاد وقتی که میخوایم متون ایرانی رو مطالعه بکنیم این هستش که ببینیم که آیا در متون ما سخنی از کوچی که به صلاح خب خیلی مهم هست دیگه اونجوری که عنوان میکننش دانشمندان غربی این کوش واقعا یک که نقطه عطفی است در تاریخ ایرانیان و خیلی از مردمان دیگر یک چنین مسئله مهمی رو ما با توجه به متون کهنه که داریم میتونستیم وسی مقاله یک اشاره ای بهش بکنیم من میخوام از متون کهن خودمون در واقع فقط یک اشاره ای بکنم به اینکه اصلا صحبتی از کوچ در متون کهن ما من وقتی میگم متون کهن ما منظورم لزوما همین متون پهلوی اوستا شاهنامه حالا یه سری متون اینجوری مدن نظرم هست میگم بله. فکر می کنم همه بدونن منظورم دقیقا چیا هستش ببینیم که نامی اشاره ای چیزی برده شده از چه کوچ در متون ما یا نه اما برای اینکه بخوایم وارد یک چنین مبحثی بشیم ما باید اول بررسی بکنیم دیدگاه ایرانی پدید آمدن اصلا گیتی، بشر، نخستین انسانها، نخستین حادشاها اینا رو باید بررسی بکنیم یعنی ما باید اینا رو اول این مقدمات رو بررسی بکنیم ببینیم دیدگاه ایرانیان کوهن درباره پیدایش جهان و آفرینش انسان و اینها چه بوده تا به جای برسیم که ببینیم اصلا، این بشر توی این سیری که داشته در دوره کهن در تاریخ اسطوره‌ای ما کوچی انجام دادند یا, یا نه من برای اینکه های برنامه اصولا تا یعنی یه کمی آشنا بشن خب پژوهشگران که خودشون میدونن اما ما قاعدتا بخش گستردی از شنوندگانمون ممکنه که خودشون پژوهشگر نباشن در نتیجه شاید لازم باشه که مثلا ما از متون کاهن خودمون یک بخشای اینجا بخونیم برای اینکه مثلا فرض کنید دیدگاه ایرانی آفرینش گیتی و آفرینش مردمان اینا رو بررسی بکنیم برای این کار معروف ترین کتابی که ما داریم برای بررسی دیدگاه ایرانی آفرینش بشر در واقع بندهش هستیم، متن پهلوی هستش که بند که همون یعنی بنیاد و آقاز و اینا دهش هم که یعنی آفرینش در واقع راجع پایه ها و بنیان های آفرینش هر چیزی که شما رو بکنید واقعا یعنی اون موقع می شده تصورشو کرد صحبت کردن دیگه از آفرینش دریاها و گیاهان و انسان و جانوران و صداها و خواب و همه چیز هر چیزی که بشه تصور کرد صحبت شده در بندهش متن دیگه ای هم که در واقع به درد ما میخوره خیلی برای اینکه بررسی بکنیم های آفرینش رو یک نسکی یعنی یک کتابی هست از اوستا به اسم چهرداد نسک شوربختانه چهرداد نسک رو نداریم الان متن اصلیش یعنی جز اون نسک بوده که از میان رفته میدونیم که ما در یک متن گسترده پهلوی دیگه به اسم دین کرد یک فهرستی خوشبختانه از نام و خلاصه ننسک های اوستای دوره ساسانی داریم یعنی ما الان در دین کرده 89 دو تا کتاب دین کرد خلاصه اون ننسک های اوستای ساسانی که از بین رفته رو داریم به اضافه نام هاشون و خوشبختانه بی بلاخره میتونیم بگیم که صد درصد همه اوستای دوره ساسانی رو از دست ندادیم. یعنی یه بخش هایش در کرد حفظ شده خوشبختانه. حالا من اگر فرصت بشه الان فقط برای این که فقط چنونده همون آشنا بشن با دیدگاه ایرانیان نسبت به پیدایش بشر بشر نخستین یک بخشی از کرد. هشت رو میخونم فصل سیزده همشو. میگه که کتاب چهرداد همون نسکی که گفتیم گم شده درباره تخمه مردمان است و اینکه چگونه اورمزد گیومرز را که نخستین انسان بود آفرید تا تن بشری را به پیدایی آورد و چگونه نخستین جفت یعنی مشی و مشیانه به وجود آمدند و درباره سرگذشت فرزندان و عقاب آنان تا هنگامی که پیشروی مردمان در داخل کشور خوانیرس انجام گرفت و تقسیم آنان در شش کشوری که پیرامون خوانیرس هستند. خب تا اینجا درباره گیومرز که اینجا به عنوان نخستین انسان ازش نام برده شده و نخستین جفت بشری همون آدم و هوای متون ما مشی و مشیانه مشی صحبت شد و میگه که فرزندان مشی و مشیانه در داخل خوانیرست در چشکشور پیرامول خوانیرست پیش رفتن گسترش پیدا کردند. نجات های مختلف آنان که در آنجا یعنی در چهرداد نسکی که الان از دست دادیم برش مرده شده است به فرمان آفریدگار خطاب به هر کدام از آنان به جایی که بایستی می‌رفتند، برده یا فرستاده شدند. و زندگی و فره آنان از سوی آلم برین یا تبر حالا ترجمه دیگه از سوی آنجای برای آنان تعیین شد و این کتاب حرکت آنانی را حکایت می‌کند که به کشورهای گوناگون رفتند و آنانی که در نواحی خوانیرا ساکن شدند و آن دسته از آنان که در جاهای میانه اقامت گزیدند و آیین‌هایی را که در میان هر یک از نژادهای نخستین بشری برقرار بوده است شرح می‌دهد. ببینید این یک بخشی، حالا ما البته داستان آفرینش بشر و اون کشورها پخش شدن انسانها در کشورهای مختلف این رو در کتابای دیگه داریم، در بندهش هم هست، در کتابای نویسندگان پس از اسلام هم هست، در گزیده‌های های زادسپره هست، خیلی جاهای داستان آورده شده مونتا چیزی که شاید خیلی بهش دقت نمیشه معمولا اینه که در همین داستان آغازین که در در واقع میگم به اصطلاح آدم و هوای دوران که صحبت میکنه صحبت از یک پراکندگی یک گونه شاید از کوچ در میان انسانهای آغازین میشه مونتا بر اساس مثلا گزیده های زادس پرام این کوچ از داخل خوانی هست به کشورهای پیرامونش و دوران این کوچ میگم است که هنوز بشر از دید تاریخ استورهی ما اصلا تازه پدید اومده به یا احتمال هنوز اون دورهی بودی که هنوز زندگی جنگری داشته و زندگی همراه با حیوانات داشت هنوز جدا نشده بود به اون شکلی بل. که بله حالا چون اینجا گفته شده که فرزندان و عقاب مشی و مشیانه هستند که دارن در جهان گسترش پیدا گستر میکنن بید. حالا میشه باز متنی خون در این باره که اصلا مشی و مشیانه که بودند و فرزندانشون کیا بودند و اینا نمیدونم الان فرصت هست اگه موافق باشین این فنماشت اینجا باشه از فنماشت دوستان استفاده بله کنیم بله بله بله و خدمتون مغایی فیلوزیجانمیب. تا خب ما شما هستیم در مورد ناگفته هایی که تو این ده تا برنامه از مقدمات مونده فرماشت شما رو میشه. توی ده شما و دوستان. حالا انقدر زیاد است که من ترجمه نمی‌دهم. دیگه به همون تزیق قبلی بسنده کنه. بله. ولی در ادامه حالا مطالبی که می‌خویم صحبت کنیم راجب این اسناد کوهنی که راجب دوران مصنوعت کوهنتر ما. صحبت میکنم بله بله. من به نظرم میخوام صحبت کنم اینم بیان که من مطالبی و که از نظر باستان شناسا و پنجشکن غربی مثل خاانون منلیست گاس میخوام صحبت کنم و محفظ نگهم برای جلسات بعدی خیلیلم بله. فقط بر اساس داده های داخلی میخواام صحبت کنم ببینید این قضیه مهاجرت برای در مطفون ما دیده نمیشه که از یک سرزمین ناشناخته ای بخوام بیان یههوی ب کل را بیان به فلات برسن یا به مجاورت فلات برسن. نه در متون ما میبینید که یک سرزن اولیه دارند که امروز نظر غالب هست که این باید فرار رود باشه از سرما فرار می‌کنه میون به فلات. این باز تازه ژنتیک میگه که نه این باز یک گروهشون بود اون تاریخ اومده، یک گروه قبل‌ترش اومده. ولی ما باز با اینا کارین نداریم. من می‌خوام بدونم که این دوران کهنی که حالا متون ما میگن پیشدادیان کیانیان این حکومت تشکیل دادن، این آیا واقعاً ما آب از دست رفته است یا یه قصص رو هوا هستن یا ما میتونیم یه هنوز هم بعد از این همه سال ناشناخته یه امیدواری داشته باشیم ببینید مرس در متون مذهبی ما نخستین انسان تلقی میشه البته نخستین انسان های دیگه هم داریم ولی خب این یکی از قبیل تایی نخستین انسان های ماستش و در متون تاریخی ما که متاخر تر میشن میشه نخستین پادشا یا نخستین فرمان روا. یعنی ما. دُغونه پس مَت داریم که اونم قبل از مشی و مشیانه ما این در چینم عیناً داریم یه انسان نخستین هست اونجا میاد شاخ میزنه با اجدابه و فلان بعد میمیره تخمهاش میشن انسان‌ها عیناً همین رو در متون مثنوی ایرانم ما داریم که کیومرثی از تخمه این انسان‌های اولی به وجود میونه و گسترش پیدا ولی خب ما مواظات اون متون دیگه هم داریم که این نخستین فرمان رواست. و خیلی جالبه ما همینشو داریم در نخستین فرمان روایان ناشناخته ملل مختلف که این یا خدایان بهش تاج میده، میدن یا اصلا پادشای دیو و پری هست با یه حالت اسطوره این بدیم پادشایی به این فرما روایه میگیره کیومرس تنها نخستین این است در متون که که مردم انتخابش میکنن یعنی زمینی ترین و غیر ای ترین نوع به حکومت رسیدن برای کیومرس زک شده که این خودش خیلی نکات میتونه شون به ما بده این واقعا این لاسان زمینیه زامیین شما مثلا اجداد حتی فراعنه توی مصر می‌بینی اصلا نسلشون از خدایان مثلا میگم مثلا تو... اولین فرعون مصری اوزیریس هستش که این بعدمش خدای دورنه زیر مکه قبلش خدای کشاورزی روی زمین بوده بلی. بعد برادرش بچه افسانه‌ای می‌کوشه دهش این مثلا ما انبوزی رو به عنوان چیز نمی‌تونیم بپذیرین ولی باستان شناسی مصری باست هم می‌خواد ها رو طبیعی کنه ولی خب کیم از کجا من مشکلی نداریم ولی خب واقعاً دور هست نیم که ما خیلی خوشبین باشیم که بگم علاوه پاشیم بریم حفاری کنیم قبل که یو پیدا کنیم نه این پس ای نظر... اصلا به نظر من دیگه آب در اطراف است ولی باز هم امیدهایی هست در جانشینانشون. نیم ما وقتی نور بررسی کنیم بله بلب تا اول دایرگان سالهای طبیعی دارن سی چهل سی این که یو مرشن سی سال کم بات میکنه. طبعی. نفر دوم هوشینگ هست ایکشنو نکنن. چهل سال کم بات میکنه و نفر سوم تحمور سی سال. متنجش مشکل نیم دو سالشون. اما جون تابیه. حالا که ها خود داره بغداده ولی طبیعیه از چهار رومی که جمشید هست در قالب متون این مشکلات شروع میشه سالهای نجومی تا دو تای آخر پیش یعنی. تا ست... می... ست آخر پیشدادی کنی تا سومین تا سه‌تاموند آخر نظر میشه هشت سال زو تحماس ب... زوتحماسن 8 تا 9 ساله اگه اشتباه نکنن و اگرشاس هم 3 تا نه سال برایش یاد می باز با طبیعی میشه در صورت. در صورت جمع میشه طبیعی نیست 700 سال مثلا 600 تا 700 سال باش ذکر میکنن. که مال رو بحث میکنن بعدا اینکه این کجا داریم که این دستمام نیست. کجا اینو واقعا طبیعی ام شده. بعد که کیانون دوباره سال به هم میززه. 120 کیقوات 150 کابوس. دوباره میاد که خسرو طبیعی میشه شهت سال میشه بعد دوره به هم میرزه لحره صد و بیستا 120 تا اصلا باز با همیشی به همه چی به تا دوتای بعدی که باز طبیعی میشن یعنی بهمن و همایی که طبیعی هشتاد و 32 این خیلی طبیعی خب این هر کنون حکایت خودشون داره ولی ما باز با این هم کاری نداریم بذید به بمونن، با باز سوایی میخوام ببینید که باز لابلای اسناد ما باز اشاراتی داریم که اینها بتونیم امید داشته باشیم که انسانها و فرما روای طبیعی بودن تا بعد بریم مرحله بعدی خب ببینید یه سری کتاب ها ما داریم مثل کتابیت متأخری بعضیشون هستن مثل عجیب نام همه دانی. اینا یه سری حکایات نوشتن یه سری گزارش ها که ما رو به فکر میبرن برای نمونه هم متأخرتر متاخیرته راجبه دوره انوشی روان دارن بگیری تا زمان تحمل صحبت میکنن و این همه برآمده از رویت مستقیمه این تجربه مستقیم قصه در قصه نیست برای مثال میگه که یک فرمان روای هندی شروع میکنه به اردو و برخورد میکنه با بخت و بدون مطالعه به آرامگاهی در بالای کوهی وارد اون میشه کتیبه رو میبینه اونجا جسدی میبینه بذوق کتیبه کتیبه رو دستور میدن بخونه این کتیبه اولا چی بوده که خوندنش و بعد وقتی اونو میخونن در آن براش ترجمه میکنن ما خیلی قشنگ هست این داستان جو... چرا بعد نام تهمورس واسش بذارن چون نام مثلا انوش یوانو بذارن نکردن براش کتیبه از تهمورس دیده شده خونده شده به اضافه جسدش و مواظات اون ما در متونمون داریم که تهمورس رو در پله کود دفن میکنن وقتی از اهریمن میکشنش بیرون اینو تطبیق میکنن در یک کپی یعنی داستان بظاهر افسانه ای متون ایرانی یه شاهد روایتی باش برای شده مستقیم تvasive بیگانه این چه چیزی میخواد بشه و جلوتر از این راجع به جمشید هست ببینید اینا بله جمشید در متون هندی بسیار افسانیش شده خدای دنیای یعنی مردگان و اصلا یه عالم دیگه است خدا شده در متون اسلامی زندگانیش خیلی اسوری است ارواز میکنه عمر طولانی داره کارهای عجیب میکنه تو اوستا هم کارای فرابشری انجام میده در یشتا منظورمه در فرگردای مندیدا همین طور ولی خب سر همینو گفتن که بس آقا بلا این یه شاه اسطوره‌ای است آرمانیز برای ایرانیا و این آدم خیلی مثلا جاه طلب بوده مثلا ولی خب نگاه نمی‌کنن که آقا در متن زرتوش یسناهات 46 بند 12 بازم اینو نگاه میکنم ولی همین هست یسناهات 6 بند 12 زرتوش از جمشید به مانی احسان حقیقی داره یاد میکنه خب ما به جمشید باید نزدیک تر باشیم از زمانی زرتوش زرتوش, زرتوش خشونده درکش میکرده و برای زرتوش این شخص شخص خدا یا آدم افسانه ای با عمر اجانه یه آدم یا هر اشتباهی کنه اشتباهش هم نکوهش میکنه بله. انگار شما مثلا هردوت باشی راجو داری صحبت کنید مثل همین میونه هم دوراش بوده تا هم دوراشو نبوده یه خود قفترش بوده, بوده ولی نزدیکتر بهش یعنی زرتوش نسبت به ما حجت قویتریه برای اینکه بگه اون افسانه است یا چی است ما اینو داریم بیایید جلوتر باز گزارشهایی از دوران حاکمیت عباسی هست که میگه که یه اردو کشی کردن یکی از این خلفا و در نزدیکی کوه دماون به یک قار میرسن و اینو با مطالعه میرن یعنی این خوندن حالا بعدا میگه این چیه خوندن من پیگیری کنن اتفاقا به یه قار میرسن و ورودی این قار بسته بوده در کنارش یک تندیس بوده این تندیس حالا با هر دانشی مکانیکی هر چیزی که ما دیگه امروز میبینید دانش مکانیکی بوده مرتبط بوده با قفل اون در و حاوی کتیبه. دور متن کتیبه شی بوده ت... یه تهدید نامه ای، یه کشدار نامه با این درومایه که اینجا جایی است که زهاک یا پنجمین فرمان رواحی که که تاج بود است در دربند هست. اینم تنیز کافی آهنگره. اگر وارد بشید دوسر مشکل می‌شد. و اینا آه. میترسن و بر می‌گرده. این رویت شده. یه حرکت حکومتی هست. یاری یعنی اصلا یه شوپولی نرفته اینو ببینه با قصه بسازه دولت که دوله و حکومتیه و اینو برای خلیفه میفرستن گزارش کارو شوخی نداره این خلیفه اگر فیز باشه مثلا حتا خود شخصا میومد که ما باز می‌خاییدید که خود خلیفم شخصا رفته بازیرو دیده. بیاید بیای جلوتر کیخسرو هست که این دیگه رویتش در عصر باستان رخ داده. یعنی اینو ما تو نوشتای نظامی داریم، نظامی گنجبی. میگه که اسکندر تغییر مسیر میده در این تغییر مسیر آگاهانه به قاره کیخسرو میخواد پا بذاره و میره اینو رویت میکنه این که آرامگاه رو در جاش میره رویت میکنه جسدها میبینه و بعد میاد بیرون حتی نیایش هم میکنه ظاهرا کتیبه هم وجود داشته بله مستخدم جناب آقای فیروزی به نظرم خب این بحثا اساسی تر هست برای های آینده ادامه‌شو بزنیم جناب آقای کریمی باید آرامشاتون بشن که در حوزه زبان شناسی تخصص دارن نکاتی که از برنامه های گذشته باقی مونده اما میشون بفرمایید تا اینکه باز وارد برنامه قسمت 11 هم بشیم و اساسی تر به نام خدا با درود خدمت شنوندگان گرامی م. راستش من دوباره یه بازگویی می‌خوام از سخن‌های جلساتی گذشته رو اینکه خب ما گفتیم که زبان شناسی می‌تونه خیلی یاری برسونه تو این زمینه. بله. معنی که من عقیده دارم که باید قوانین زبان شناسی رو رعایت کنیم. یکی این، یکی اینکه از کتاباشون باید حتما استفاده بکنیم. اونجایی که درسته رو میتونیم قبول کنیم، اونجایی که درست نمیدونیمم با دلیل بیاریم و دلیل علمی. نه فقط رو مثلا احساسات و اینا. بعد اینکه می‌خوام اینو بگم که انسان‌های نخستین ما واسه چی اینقدر رو استوره تاکید انسان انسان‌های نخستین وقتی که واژه ساختن به این واژه بار مفهومی دادن. یعنی آهسته آهسته با صدای نی نخستین واژه رو ساختند. از ابتدا اسم ساختن بعد با اسم صفت رو ساختن تا با صفت اومدن به زمان بخشیدن به صفت و فعل ساختن خب این به ما چیه میرسونه ؟ رسونه به این به ما می رسونه که وقتی ما میاییم مثلا واژه کیومرس رو می واقعاوی میکنیم بعد بدونیم که چند هزار سال از این دوتا واژه گذشته چقدر تو ذهن اینا عمق پیدا کرده تا تونستان از توش مفاهیم استورهی در بیارن و تاریخ خودشون رو باش بازگو بکنن یعنی اینکه که چندین هزار سال از اون ساخت این آواها گذشته باشه اسمها گذشته باشه، صفتها گذشته باشه، به فل رسیده باشند، از فل مشتقاتش در اومده باشه و ذهن اینا انقدر تکامل پیدا کرده باشه انقدر تونسته باشه که با این مفاهیم بازی بکنه و از توش در بیاره و اونا رو برای مردمش بازگو کنم یعنی تاریخش رو توش بقبولونه یعنی قالب کنه توش این مفاهیم بعد خدمت شما عرض که اون وقت ما میبینیم که آیا این واجه هایی که ما الان مثلا باشیم اومدیم که اون ساختیم آیا در های آریایی دیگه که به قول اروپا بهش میگنند اروپایی آیا اون زبانها هم ریشه داره؟ آیا وقت این واجه داشت داشتی ساخته میشده اینا هنوز با هم داشن زندگی وقتی اینا از این واژه از اسم می‌رسیده به صفت از صفت می‌رسیده به فعل و ازش مشتقات در میمده آیا هنوز با هم بودن آیا ما می‌تونیم دستور زبانشون رو پیدا بکنیم دستور زبانی که اون موقع داشتن کیس هایی که اون موقع داشتن مثل که 8 حالت داشته که بعدا توضیح میدیم در مورد هم همه اینا اون وقت ما می‌تونیم تشخیص بدیم که این اسطوره ها کی ساخته شده کدومش تاریخ آیا اسوی جمشری که ما میگیم به واقعیت نزدیک‌تره یا اون چیزی که ما در سنگسرید داریم و یا اون چیزی که در کشورهای اسکاندیناوی داریم که شادام جانشدرخش هم بهش اشاره می همه اینا رو ما میتونیم با قوانین زبان شناسی و حتی دستوری و نحویشون اینا رو پیدا بکنیم. ببینیم که مثلا خب این واژه مثلا گیری به کوه در اوستا خب که اومده در وندیاد عاشقا میکنه و در مورد این مکان ایران ویج هست بیاین بفهمیم که خب این فرق غیری با کعوف چیه ما دو تا چیز داریم دو تا کوه داریم یکی به ما میگه خای در عوسته یکی غیری خب فرق این دو تا چیه چرا اونجا که میخواد بیاده از اصریخوندان سخن بگه میاد از واژه غیری استفاده میکنه چرا نه از واژه کف استفاده کنه اونجاست که باید بدیم که منظور از غیری این یعنی رشته کوه نه یه کوه تنها اونجاست که باید بگردیم اونجا که ما به اسم ایران می‌خوایم میخوایم دنبالش باشیم باید یه جایی باشه که رشته کوه بلندی توش داشته باشه این یعنی آشکارا داره به ما میگه وقتی بدونیم مثلا کیس مثلا مفعولی از چیه وقتی بدونیم که این کیس مفعولی از مفرد یا جمع اون وقت کاملا مشخص میشه که رشته کوه چجوری بوده اندازه برفی که اومده چقدر بوده که دیگه نخواد بگم نه این سرمای معمولی بوده که اتفاق افتاده دیگه می‌دین که اوم مفعول عظیم وقتی میگه وقتی میگه از فلان کود مثلا از بالاترین قسمت کوه تا پایین قسمت روت‌های های ما ازم میخوام دیگه این دیگه زمستون معمولی نیست چون اینجا مفعول عزی اومده یعنی همه اینا به ما کمک میکنه که دونه به دونه بتونیم مایندار بازیابی بکنیم یا ببینیم مثلا این واجهه کوه با کدوم یکی از این تیراهای آریایی بیشتر نزدیکه که ما بگیری کردیم دیدیم با آلبانی، با لیتوانی و با اسلاوی خیلی بیشتر شبیه تا با جرمنی خب این باز داره به ما نشون میده که آقا باید ببینیم که این ایرانوش باید نزدیک باشه به جایی که من از سنکسیت هم هستش پس باید این ایرانوش یک یه جایی باشه که کشیده ای داشته اون برفی که ازش اسم میبرن، از که اسمی میبرن کاملا از ریش خواندانه و اینکه میگن آقا یه زنگ اسمش معنی بوده اصلا توجیف از این نیست بقواعد نحوی اوستاو و بعد ببینید خو واجه گیری در گیری به معنی کوه اومده ما الان بلند یواشاش واژ میکنم در زمان سنگسرید پس نشون میده که این ایرانویچ باید جایی باشه که بین یه مثلثی قرار بدیم بگیم فرهنگ اوستایی فرهنگ سنگسرید و فرهنگ اسلاوی این مثلث به ما نشون میده که ایرانویچ کجاست بذ چون بس. از واژه‌هایی که براد از واژه‌هایی که می‌تونیم از اینا در بیاریم از دستور زبان و نحوی که می‌تونیم از اینا در بیاریم خیلی راحت می‌تونیم تشخیص بدیم که این ایران وچی که دارن میگن به هیچ عنوان نمی‌تونه اسکاندیناوی باشه به هیچ عنوان نمی‌تونه آلبانی باشه چون دقیقاً در بین این تا فرهنگ این دستور زبان و این واژه‌ها میچرخه دستور زبان و واژه‌های اوس فرهنگی اوس البته اینا از یه یکیه ولی خب آدم به خاطر که مشخص بشه ذهن شون بندگار من میگم فرهنگ اوستایی فرهنگ سانگ و فرهنگ اسلاوی که خاندوی تو دما کیومرس فرمونه حالا من به ایشون دوباره صحبت میکنم واجه شد و 20 بیست و واجه زبان مختلف در حتی تو زبان محلی ما سعی میکنیم تو برنامه های بعدی از خود اوستا با زبان خود اوستا یعنی زبان خودش شنیده بشه خیلی فهم میکنه چرا ما می‌گیم وندیداد فلانجا فلان حرف رو زده ولی وقتی با خودش شنونده با همون لحن می‌شنوه این حس بهش الغام میشه که اینا تاریخه اینا افسانه نیست. بله خواهش من چون که بحثی که در مورد کیومرس هستش هم بحث زبان هم بحث تاریخی که خانم دکتر شروع کردن چون مربوط به قسمت اصلی برنامه است چون امروز قرار بود اون ناگفته‌های مقدمه رو ذکر کنیم اجازه بدید بمونه برای قسمت یازدهم. قسمت دوازدهم هم از خواهی می و اونجا در واقع به تفضیل و به طور کامل بحث بکنیم و چون که فرصت برنامه هم یه دقیقه بیشتر نمونده شنوندگان گرامی خیلی خوشحال بودیم که در این قسمت یازده هم در خدمت شما بودیم و از خواهی می کنیم که ما این مسئله بیشتر باز بکنیم چون حوصله برنامه تا یه حدی هست خب چه نمونم دوست داره وارد های اصلی بشه و مقدمه تا این حد بیشتر از این واقعا دیگه نمیشه بهش پرداخت من با وارد بحث... بحث های اصلی تاریخی بشیم اینکه تاریخ ما رو بعد از کجا شروع بکنیم مبدأ تاریخ ایران کجاست کی کیست آیا اولین انسان هست آیا اولین پادشاه هست از چند سال پیش هست و احتمالاً به در این مورد هم بین دوستان اختلاف خواهد افتاد و قطعاً با متدهای علمی و هم بحث خواهیم کرد و امیدواریم که به نتایج درستی برسیم و در واقع شرمندگانی گرامی رو تشویق بکنیم به مطالعه مجدد تاریخ بر اساس اسناد خود ملی اسناد خود کوهن تاریخی ایران شما شرمندگان گرامی رو تا آغاز قسمت دوازدهم به خداوند متعال بسپاریم خدایی آر